حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر بلک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازم با اش دل ببندی از که دلم سبزه هیچی توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا بشوکه قلب سبزت هیچی دیگه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام حالا احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین من فرشته منوپیام اینجا رادیو پاسورداست چشم تهرانی های عزیز روشن امو پوتین اومده سلام ما رو خیلی برسونین به امو پوتین علم بله میگن امو پوتین تشو بردن تشو بردن یعنی تهران ایشون ماشین مخصوصش که بنز عجیب غریب زده موشک خفنم هست با خودش آورده تازه کیف اتمی مخصوصش هم همراهشه آخی و خدا نکرد زبونم لان منافع روسیه جایی مثلا اقتضا کرد مثلا در کیف وا کنه اون دستور مخصوص آگن بزرگو صادر کنه و روسیه از سلاحهای اتمیش استفاده کنه عین تو فیلمان دکمه میزنن موشک میره این دیگه اما پوچینه دیگه دستخالی که نمیاد که تازه ایشون صاف هم از فرودگاه رفته ملاقات محزمله یکی از قدیمیترین نسخه های خطی قرآن رو برده داده خدمت محزمله اطمالا الان توی موزه مرکزی موسکو همه در به در دنبال قرآنن الان به خدا والا ما که راضی به زحمت نبودیم به حال دست گلشون درد نکنه میگن انقدر جف سمیمانه بوده انقدر جف سمیمانه بوده احتمالش بوده همونجا پوتین اسلام بیاره یعنی تیم خطنه سرون بیت و ساز و دهل آماده بودن در صورت نیاز وارد عمل بشن در این حال یه واضی خلاصه که امروز روز پرماجرایی بوده تو تهران حالا ما هم امروز ماجراجویی داریم براتون تعریف کنیم بیا و بشنو. پس برو بری امروز میخوایم در ادامه سلسله مباحث نفوذی خودمون بریم سراغ نفوذ اقتصادی و نگاهی بندازیم به جماعت سرمایه‌دار مولتی میلیونر آمریکایی، و اروپایی و خارجی و اینا که از الان دارن برای برداشت شدن تحریم‌ها لحظه شماری میکنن که با میلیاردها دلار پول هجوم میارن، نفوذ کنن به اقتصاد مملکت. غافل از این که اقتصاد ایران هم چه علکی نیست که هر سرمایه‌گذاری سرش بندازی بیاد پایین، بیاد تو که. بله. پس سلام و بیزارز می‌کنیم خدمت همه اون دلواپسانی که از الان آمادن بزنن ساق پای سرمایه گذاره غربی رو غلم کنن و خدای نکرده حرف رهبرشون که گفته اجازه نفوذ نمیدهیم رو زمین نمونه حالا دیگه رهبرم حالایش گفته دیگه به این شدت هم منظورشون نبوده که آره بابا آره سرمایه گذار خوبه و آفرین بذارین بیان داخل باری که اللهم و فرشید قربون قدتون بشه آفرین آف آقا اصلا فرشیده منافوزی به برنامت هم میخوره ایداد بیداد آقا شوخی دستی بکنین با من شوخی اسمی نکنین من چقدر بگم؟ من رو اسمم حساسم دیگه خدا نکن نقطه زف از کسی بگیر اینا عجبا عجبا اما آم چند روز پیش اه... شبکه 2 صدا و سیما اوه oh, یه yeah. حالا بزایزر اویه بره بزایری اویه اویه شبکه 2 رو حالا می اوه یه اوه یه خیالم راحت شد حالا میگم که چند روز پیش شبکه دو تلویزیون از چند تا کارشناس خفن فضای سایبری دعوت میکنه بیان بشینن در مورد تلگرام و ضرورت یا عدم ضرورت فیلتر شدن تلگرام صحبت کنن یه بخشی از صحبت‌های یکی از این متخصصین رو بشنوید لطفا تلگرام رو سهیونیست های روزتبار پناهنده آلمان ترده کردن سرورش در انگلستانه و دفتر اصلی فردی که این تر... ترمگذاری رو کرد و این شبکه رو ایجاد کرد در رژیم سهیونیستهی و عضو کنگره سهیونیست و اصوات شماستون عمکتی که این تلگرام رو سرمایه‌گذاری کرده و راه انداخته و نتانیاهو اون رو برادر خودش می‌خونه و میگه از برادر به من نزدیکتره و ایشون فخر ارتش اسرائیله. جلال خالق جلموشالله ایشون علاوه بر مدرک کارشناسی فاز مجازی کارشناسی ارشد صهیونیستی یابی هم داشتن ها کی فکرشو می‌کرد آقا داستان کثیف صهیونیست ها پشت کانال تلگرام هم باشه واقعا کی فکرش بعد از صحبت‌های ایشون راستش خودمون هم به شک افتادیم رفتیم در مورد تلگرام و بنیانگذارانش و جد آبادشون تو اینترنت کلی سرچ کردیم اینور اونور بلکه ارتباطی پیدا کنیم بین اسرائیل غاصب و این نرمافزار به ظاهر روسی و در باطن صهیونیستی تا رد این پاول دروف مارمولک رو که به مارک زوکربرگ روسیه هم معروفه تا پشت در اتاق نتانیاهو بگیریم ولی نبود آقا نبود هیچ اثری هم از دفتر تلگرام تو اسرائیل پیدا نکردیم رجگشتیم. حالا طبیعی هم هستا ببین گفته باشم بالاخره این حرفا و این روابط تو که علنی نمی‌کنن که نتانیاو نمیاد جلو دوربینا و خبرنگارا به پاول دروف بگه تو داداش منیکه که. اینا رو یواشکی در گوشی وقت خلوت می‌کنن میگن. آره دیگه حالا قافل از این که پلیس فتا و کارشناس محترم فضای سایبری حواسش به همه چیز هست. بله خلاص اینم سی تا پیازی شبکه تلگرام بود که خدمتتون گفتیم. حالا دیگه ای دوست دارین alat دست اسرائیل و صهیونیستا بشین دیگه خودتون میدونین دیگه ما وظیفمون بود اطلاع رسانی کنیم دیگه. کانال تلگرام ما هم هستم رادیو پسوردا میتونید به کانال تلگرام ما هم بپیوندید. <تصفيق> فرشی جان سلام تی جان و قضان باشم زای جان جمهوری اسلامی نفوز بگیدیتی برنامه قشنگ پس فردای خیلی تحتیل بگنیم اما از دستان نفوز یا ناراد میگو فرشی جان بیایی سوید چند روزی میمان من بگو اینکی میخنم استاد تو باغلا خورش و مرز قاسمی کل کباب این جای تو خالی بکات مایش بلو پل کباب اغوز مغز بغلا جای تو خالی دوست داری بفرما قربان ظلم فسیاتو کن ريباشا يلموز ظلم فسیا کجا بوده تي فادا تي جان قربان بالا دم آقا دمتون هم حتما خدمت میرسیم بر هر حال کولوشو فومنی هم به هر حال بلد باشی درست کنی دیگه عالیه دیگه البته اونها که گفتن اصلا مغزگردو دو اوف وای وای وای هوش از حواس اصلا همه چیم رو ولش کن آقا موزیک برو موزیک برو بلش. بلش. واقعا کلو اخ با اشبل و مغز گردو با قلوه قام وای وای وای وای وای اصلا اعصابم ریخت به هم ها. اصلا یادم کوچوش فومنه یادم رفت کلا ولش کنین خب خودتون خوبین چه خبرات چه میکنین با ترافیک این روزای تهران دیگه گفتم دیگه امو پوتین اومده دیگه ترافیکه و همین چند روزه دیگه آقا میگذرید نگران نباشین اوه دشتی رو بگو چه کلافه بود از دست این ترافیک خیلی خیلی حالش ماشین مشتی ممدلی ارزونو بیمو اتلی ماشین مشتی ممدلی نه بغداره نه سندلی او... داشت اصلا تی سمت تمران ممران نره امشبا به خوزها آره رو بستستیه به کلی یعنی من بیتاره تی امروز یه دو ساعتی یکی دو سر خودم میزادم یکی تو سر این تی ابو غرازه مادر مرده بتونیم یه سراخت همهی پیدا کنیم چی از این ورونور تمران در بیانیم بیرون آره با چه میدونستیم بستست آخه چی بگم والا میگن نمیدونم یا یارو پوتین تکمستی این اومده ایران بسی که جلسه ملسه داشتن امروز واسه گاز آره دیگه یعنی این زور مواقع بابا بفهمیم به مملکتمون خیلی گاز داره از پول مولاش که چیزی به ما نمیباسته که فقط فقطی بدبختیش باس تحریب. یعنی به خاطر تحریم گاز مازم نمیتونن برفوشن؟ زوره با ما گفتیم حالا شاید این گازه رو همین زوری از زیر زمین فشارش میدن میره اون دیگه، دیگه پس تشارمشاری نیست حضب یعنی این تحریم محریم که میگن زدی زدی زد پدر مملکتو تی در رو خورده از اول زنگ همش میگفتن ما تحریمیم ولی این زوری نبود دیگه که نه شما یادته دیگه حالا موقع زنگ هرسی پول در می آوردن چی؟ می دادن توپ دست دوم سوم می خریدن می زنگیدن. بعد زنگ هم که دیگه هرسی خودشون می خوردن بلاخره بازی دوزار سه تش تهش مردم میمون ولی این تحریم این چند ساله خیلی لاکردار بود خدا وکیلی ها نمی دونم این یارو عمدی رجاده کار کرد؟ البته تی این رو عمد شماعین شدت سا؟ شما دیگه خواهد بله داشته من تی این همهشون دستاشون توی کاس هست والا اتفاقا تی پریروزایی که این بسه های خط ما آمده بود شاکی که تی یارانش رو قد کردن رفته بود اعتراض می به شفته بودن تی بشه شما به خونه داری ماشین داری تی به تعلق نمیگیره خوبه دیگه آب و برگ و تی بنزین و اینا رو کردن چونسد برابر یه تنزالی هم مای تلو پنج تا من انداختن ظلم هم بعضتون خوبه دیگه بهتون تعلق نمیگه یعنی خوب مردم ای میره تو پادسمون را گرم به خدا دمه گرم زونم همین مقال عیب به سر این کوچه نگه داره. ما را نماز زادم سر بخ بزنیم و هر تو در آدم را با میکنه خدایی می بینم جزیره بسته سیتی سماقی فرشانداخته نشسته سیتی سماقی چشای چوهری داره چای دم کرده تو قوری داره سیتی سماقی چشای چوهری داره چای دم کرده تو قوری داره سمبرت قولبول میکنه صدای بولبول میکنه اگه در دلت باشه صحبت خودش گل میکنه از عشق تو دارم میشم دیوانه سیتو ماقی منو ببر به خونه در دنیای یک دلم قرار نداره از دست تو راه فرار نداره و اما بریم سراغ رادیو پاسورده شماره 936 امروز دوشنبه دوم آذر ماه 1394 اونیک تکرار برنامه میشن شنبه سوم ماذر ماه میشنون شما هم که دانلود میکنید یا از روی فضای مجازی میشنوید یا هر موقعی ممکنه بشنوید این برنامه میره سراغ نفوذ اقتصادی هوا رو از من بگیر دلارهایت را نه فایل شما جی 936 بدانید و آگاه باشید که نفوز اقتصادی اگر از جانب کشورهایی مثل چین، ونزوئلا و روسیه بوده و با کنی بعضی برادران صورت بگیرد اسمش می شود جذب سرمایه گذار و سرمایه خارجی اما اگر از جانب برخی کشورهای دیگر باشد اسمش می شود نفوز اقتصادی که باید با چنگ و دندان جلوی آن گرفته شود پس همانا اگر فرق سرمایه گذاری خارجی چینی و نفوظ اقتصادی غرب را نمیدانید همانا از اوضاع مملکت خود نشناسندگانید امزاو جمعی از تو کف محصولات اپل و گوگل و مایکروسافت بوده ها و از دیدن اجناس تقلبی و مشابه و درجه دو چینی کهیر زده های رادیو هست فر سادسید جام صادق هستم از مشهد جاد خالی اینجا خیلی هوا سرده خیلی دوستتونم کنم بوش بوش غربونت آقا هوا سرده مشهد جای ما رو خالی می‌کنی ما اینجا خودمون داریم تیک تیک می‌لرزیم غربون شکلت خوش بگذرونین در مشهد در اون هوای سرد جای ما رو خالی نکنین ما دلمون برای خود شخصی شما ممکنه تقیم بچه ولی برای آب و هوای سردش وقت وقت ت والا به خدا سرد ما اینجا هم داریم ممجی میلم این چند تا من لباس پوشیدم لایه لایه لایه لایه فکر کنم 20 کیلو لباس بوشیدم رو هم امروز به خدا برف هم امروز یه زد آقا راسی عراق چرا اینقدر سرد شد عراق هم امس... امسال 4 درجه زیر صفر نداشتیم تا حالا سمت عراق اون و را حالا بیرژندی هم کم نه بردن اونا هم امشب تا 4 درجه تشریف میبرن زیر صفر. دیرجند یاه بله. بالا عوضش بشه. به حال دیگه ما آخر پاییزه و کم کم داره زمستون از راه میرسه دیگه. در بررسی اوضاع جوی طبق آخرین پیش بینی‌ها صورت گرفته از فردا تا آخر هفته مقدار اوضاع سواحل جنوبی ایران شیر تو شیر میشه. حواستون باشه یعنی باد و طوفان و رعد و برق و رگبار اینا داریم. دیگه خواهش ما از ساکنین شهرهای ساحلی جنوب ایران اینه که اگه کار و شغلتون مثلا با لنج و دریا و این چیزاست این سه چهار روز رو بیخیال دریا رفتن بشینید مقدار با خانواده وقت بگذرونین این به صایره و مراد برسین. خانوما خانوما اونا که گوش نمیکنن خانوما شما نظر این تا آخر رفته برن دریا آقا این سویچ لنجشون رو یه جا قایم کنین خدای نکرده اتفاقی نیفته دیگه از ما گفتن بود الان دریا خیلی موجه کاکا کا به خدا خیلی موجه، موجه، موجه، موجه، موجه I'm not your type. بخشون نفوز مرا خود من زمانی که من از سر کار میام بله و آیان مربوطه من رو در در بله و خست و نواشید میگن ولی میخوان از نزدیک صورت استراتژیک در من نفوذ کنه، ببینن موی زن ای روی لباس من هست یا نه موی عطف زن ای هست یا خیلی و اینکه این روج لبی چیزی اطراف صورت بالا پایین ریل گردن اون رو لسط کنه. خب آقا با قربون شکله چون خودت اطمعی مشکلی توی سابقهی چیزی داری دیگه و حال میگن شما خودت یه داستانی داری که اینجوریه و یعنی چرا ما ها اینجوری مورد استقبال قرار نمیگیریم این آدم نه ولی خوشم آمد از این استراتژی و تکنیک خانومت خیلی رومانتیک و نامحسوس کار میکنه خانوم ها یاد بگیریم اینجوری هم هست فوز اقتصادی هوا رو از من بگیر دلارهایت رو نه <تصفيق> یعنی توی مملکت ما این روزا ماجرا یه جوری شده که تا اسم اقتصاد میاد همه به جای اینکه فکرشون بره سمت سیاست های اقتصادی و چه می‌دونم بانک و خزانه داری و اسکناس و فلان یهرا سیادت بابک زنجانی می‌افتند راستی الان این سوال پیش میاد که ببینیم که اصلا این پدیده بابک زنجانی که شاید اولین بار تو دعوای عثمان محمود و علی آقا لاری جانی تو اون یک شنبه سیاه مجلس اینجوری با نام زه ازش یاد شد چی شد که اینجوری شد باید خودت رو به دکتر بگی که آقای زه که همونه که میخواست قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وقت بشه هم. آقای فاضل لاریجانی با ضایع متذکری میگه من میخوام ضمن گروه ز کار بکنم. علی اجازه چتپی نزنه برای من. بله آقای ز و گروه ز و اینا همه ظاهرا همین بابکجان خودمون بودن اون موقعها که اصلا اون موقع خیلی سر و صدایی ازش نبود و الان رسما مهمترین سوژه خبری های ایرانیه. بذاریم با هم یه بررسی بکنیم ببینیم این پدیده ز یا به ز یا همون بابکجون خودمون رو این از کجا به کجا رسید. حدیده یه بابک جان زنجانی اصلا وقتی مطرح شد که مملکت از نظر مالی نفوز ناپذیر شد یعنی اینجوری که معظمله اسب چموشی به نام عوسم عمود ول کرد که برو هر لنگ تخته میخوای بنداز عوسم عمود هم نامردی نکرد هیچ تپی رو پاک و متحر باقی نذاشت دیگه دنیا هم ایران رو از, نظر... از همه نظر تحریم کرد و عملا ایران برای فروش نفت و مهمتر از اون وصول درامد نفتیش نفوز ناپذیر شد. اینجا بود که اسم شخص شخصی به اسم بابک زنجانی توسط نظام رو شد تا بیاد از وسط مسطح این راه نفوذ بسته یه سوراخ سنبه‌ای چیزی پیدا کنه از اون همه پول بلوکه شده ایران یه سه شایشو برداره بیاره تو کشور دوباره مونتاها بابک جونم که عاشق چش و نظام نبود که ولی دیگه پولای رو آورد به ایران مونتا از اون پولا چونان لغمه های دروشت شست و چهاری برای خودش برداشت که در نهایت بعد از غروب خورشید اوس حمودی صدای دولت جدید در اومد که هوار هوار بردن دار و ندار ما رو هوار هوار بردن دار و ندار ما رو ز دست من گرفتن اون یار بی وفارو بی و سلام امروز دهی پایین اومدن از پله های مشتتمم خیه های پی رو دیدم داشت میومد بالا خیلی ناز و یه کلاه قهوه سرش بود و خیلی پیر آروم هاروم از پله میاد بالا همچ که نزدیک شدم م. یه مدیدم که داره پسوردا گوش میده با صدای بلند آخه. و خیلی خوشحال شدم بله؟ چرا قط کردی؟ یه بار دیگه برو. شهرام کارا چیه میکنی؟ سلام امروز در حین پایین اومدن از پله های دست نزم به اون قط میشه یه آقای پیری رو دیدم دوش میمد بالا خیلی ناز و یه کلاه قهوهی سرش بود و خیلی پیر آروم آروم از پله میاد بالا که نزدیکش شدم یه ها دیدم که داره پس ورد آگوش میده با خوب. صدای بلند خوب. و خیلی خوشحال شدم. گفتم تا باشه از این نفوذا بح خیلی باحال بود خیلی آدم باحالیه بح از همینجا قربونش دست شما درد نکنه ببین چقدر طرفدار داریم خدافظ خدا مریم ام افتاد داشتی مریم جان دست شما درد نکنه مرسی واقعا چه نفوزی یعنی روی پیرو جوون می می‌بینی یک اندازه ما نفوذ داریم از گروه سنی علف که 96 ماهه هست مخاطب داریم تا گروه سنی یک که خدا سایشون از سر جوانا کم نکنه این دفعه این پدر رو که دیدی شما توی راپله وقت دیدی از طرف من یه ماچش بکن مریم یادت نره ها از طرف من ماچش کن یادت نره پدر جان شما ما گوش میکنین برنامه رو حواستون باشه مریم خانوم اگه اومد ماچتون کرد از طرف ماست یعنی میگم سوء تفاهم نشه یه وقت حال آره دیگه از طرف ماست بر <تص> یه کاری کردم دیگه بردا توی راپله صدای پای همون میشنون هر کدوم مسیرشون عوض کنن یه طرف دیگه برم چه کاری بود آخه واقعا من نمیشونم این هفته از شما پرسیدین بهمون بگین نظرتون در مورد واژه نفوذ چیه و ازتون پرسیدیم به ما بگید تا حالا شده احساس کنید بهتون داری نفوذ میشه حالا چه از طرف دشمن چه دوست خودتون تا حالا روی کسی نفوذ داشتین یا سعی کردین به جایی یا کسی نفوذ کنین حالا این نفوذ میتونه توی تلگرام یا فیسبوک یا مثلا گوشی موبایل کسی باشه یا مثلا به محلی که اجازه نداشتین برین یا حتی نفوذ توی اعماق دل یا روح و روان کسی خالصا این هفته گفتیم برامون از خاطرات و تجربیات نفوزی خودتون بیشتر بکین فارس جان چون الان جان. میخوام برم بگیرم بخوابم بله. مثل همیشه برناماتو دارم پلی میکنم بح بح. پس شما الان داری به من نفوذ میکنی نه تنها به من نفوذ میکنی بلکه داری به تخت خواب من نفوذ میکنی منظورم هستم از کشور اختلافات فرهنگی بری به دوست داشتنی منصور جان شما ما رو به زور با خودت میبری تو تخت خواب من دارم تو بر... به تو و تخت خوابت نفوذ میکنم واش بدبختی داری ما از این نفوذ نیست اصلا ما... حالا ما چی نمیگیم صدامون در میاد چون هم همچنی دست پیش گرفتی خوبه بالا نفوذگر نفوزگر به رخت خواب نشده بودیم که شدیم خدا تو همون ما اینا بود نفوزگرده رخت خواب نبود جدید اینا توی اینستاگرام میریام 55 گفته سرما سرما بدجوری نفوذ میکنه سرمایه نگاه، سرمایه حرف، سرمایه تحقیر، سرمایه شک، سرمایه حماقت از همه بدتر سرمایه زور، سردمه، سردمونه ایشالله سردشون بشه یعنی میگی میشه با کلی علامت سوال چقدر پر پرستاره بودا؟ الان واقعا حالا سردتونه یا بازم از اون لحاظ میگین خیلی فلسفی و اینا چیه داستان؟ راشمون 789 تو اینستاگرام گفته او شعر گفته گفته بسازم خنجری نیشش ز کنم در فتنه من یک منفظ ایجاد مبادا دژمن از منفظ رود تو ولی انگار رفت ای داد بیداد بیارید چسم پونز منگنه سیم ملافه پرده ایزوگام جاجیم بیا تا هرچه منفظ هست ببندیم به اونجای آقا دژمن بخندیم پسر خوبی خوی باشه و بخون 5 دقیقه زحمت کشیدم تو گفتم تشکرمندم راشمون بابا خیلی خوب پنج دقیقه ای شعر گفتی ها این شاعر برنامه از هفته یه دونه شعر میگه این یه بیت شعر میخواد بگه دو روز قبلش باید بره تو هرس نمیده چه ناز و ادا ای در میاره خودش واسه دو بیت شیر. آقا پاشو بیا راشمون بیا پراگ دستو بند کنیم پیش شاعر دربار اینم ردش کنیم بره این چیزو واسه خودش تو خرابات مرابط بره حال کنه شعر و شاعر برناممون به خدا فردو راديو ایمیل ماست 41 و شماره های SMS ماست. در فیسبوک گوگل پلاس سام کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید شماره وایبر واتس و تلگرام ما 20420602338377 هست کانال تلگرام هم داریم میتونید اونجا جوین بشید و با ما باشید در کانال تلگرام تلفن های پیامگیر ما دو صفر چهارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار صد و سی و و شست و و برای این که از داخل ایران تماس میگیرند دو صفر چهارصد و بیست و شش یک هفتاد نو عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید بنا به های رسیده همکنون یکی از پهپادهای نفوذگر دشمن خونریز در خاک پاک میهن عزیزمان در ایلام قهرمان پرور توسط دلیر مردان پدافند ضد پهپاد سپاه پاسداران به اسارت گرفته شده سقوط کرد به گزارش های رسیده بله بله به خبر دیگری که همکنون به دستم رسید توجه فرماوی به گزارش های تکمیلی پهباد مورد نظر متعلق به نیروهای نظامی کشور خودمان بوده به علت نقص فنی در استان ایلام سرود کرد آج چه وضعی آقا موسیقی رو عوض کن آقا موسیقی رو عوض کن اشتباه شد کن عوض کن موزیگو چه بساتی داریم ما؟ اسلو دل نفوذیم نظر که خونه نفوذ و عیت اول یه میشه نگاه کرد. نفوذ یعنی رخمه کردن یعنی دخالت و دستاندوزی کردن گفتن و ایراد گرفتن یعنی تو نمی‌فهمی یعنی حرف من درست رو قبول کن نفوذ یعنی امر به معروف و نهی از منکر نفوذ یعنی توحین به شور یه ملت که شما نمیفهمین و نیاز به ولی دارین تا برات تصمیم بگیره حرفم بزنید بتونن تو دهنت ولی ما بچه‌پول‌تر از این حرفو ایم و روشون هم کم می‌کنیم آورین آورین شما برو جلو ما از اینجا داریمت. ببینم چیکار میکنی ما که خواستیم قبلا روشون رو کم کنیم زورمون نرسید ولی ماشالو شما تازه نفسی برو دارمه دارمه ما ادامه داشتم قصه بابکجان زنجانی و نفوذ اقتصادیشون اینا رو داشتم میگفتم ادامه قصه بابکجان زنجانی و اون نفوذ اقتصادی رو اینا اینجوریه که به اینجا رسیده بودیم که به کجا رسیده بودیم <تصفح> رسیده بودیم به ها بابکجان مأمور شد که بره عملیات نفوذ به داخل تحریما رو انجام بده پولای ایرانو برگردونه ایشون مثلا برای اینکه تحریما رو دور بزنه رفت چند تا بانک تأسیس کرد تو کشوری خارجی مثلا تو مالزی و تاجیکستان و دوبهی و اینا بعد خیلی جالبه که طبق اظهارات خود بابک جان توی دادگاهش همه ی دستگاه های مربوطه تو کشورم از کاراش خبر داشتن جوری که ایشون گفته مثلا معاون اول زمان همون موقع معاون اول اون زمان چیز کرده نامه زده به ایشون معاون اول وزیر اطلاعات ببخشید معاون اول رئیس جمهور معاون اول اون زمان وزیر اطلاعات نامه زده به ایشون که آقبابک تو رو خدا مواظب باش که این بانکی که تو مالزی زدی لون نره چون این بانک الان تنها سراخیه که ما, ما میتونیم یه کمی ازش پولای کشور رد کنیم بیاد تو تصور کنید نفکر کشور به اون عظمت با این همه درآمد ارزی با 80 میلیون جمعیت میاد لنگ مثلا یه بانک پیزوری شده که بابک زنجانی رفته تو مالزی تاسیس کرد تا بچ ازش پولا رو یه جوری وارد ایران کنه خب اصلا خداوکیلی بابک زنجانی نه من نه شما نه هر کسی دیگه ای وقتی ببینه امورات همین مملکتی انتر و منتره ایشون شده سم نفوذش رو بر نمیداره نه بر نمیداره داره خب بر میداره دیگه مت بدبختی اینه که وقتی تو اینجور موارد زیاد به سیاست مداره اعتماد کنی آخرش هیچ نیست سر از زندان در بیاری و حتی چه بسا عزیزان در کمال خونسردی بفرستند بری بالای دار هیچ برید نیست؟ میگید نه سب کنید دادگاه زنجانی تمام بشه دا ببینیم دست موزد بابک جن رو چیجوری میذارن کف دستش یا دور گردنش یا حالا هر جای دیگرش دلنگرانی ما از آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند امران ملکوتی سلام سلام فرشید جان سلام همگی چه خبرها خب بذارن تا معمول از سینما شروع کنم امروز غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرده به خاطر تراکم فیلم تا پایان امسال تو سرگروه آزادی فقط در ماه یه فیلم اکرام میشه البته علت این تراکم هم بر همه واضحه و بر هم که چیزی نیست جز نمایش فیلم محمد مجید مجیدی که وجود که سالن‌ها خالیه هنوز دارن نمایشش میدن معلوم است این نمایش تا کی به حال ادامه داره همینطور شورا به فیلم حکایت عاشقی ساختۀ احمد رضا احمد زاده مجوز اکران داده بخش هست از فیلمو بشنویم تا من بعد بیشتر توضیح بدم بشنوی نمیدونی چه حال خوبی دارم فکر می‌کنم بالاخره دختر رویام پیدا خدا خیرت بت باش به هر که رفتن راحت شده چی از جون من می‌خوای می‌خوام تنها باشم تنهایم احساس میکنم بعد این همه مد هنوز نشناختم هنوز نمیخوایم به بگی چی شده نوزدت چی من یه عاشق هم بوده. پیام سازو این صدا ساز خیلی مرموزه. زهر بر بش گفته. دست اینو بببر. من دست جونم می‌خواستمش. اصن اینکه اونجا حالت شد به خاطر این هم. بخش از صدای فیلم حکایت عاشقی به کارگردانی احمد رمضان زاده رو شنیدیم. حالا توضیحات بیشتر گامران بشنوید. وجیرا اصل فیلم بهرام رادان، بهمن زغینپور، قطب دین صادقی و شیلان رحمانی هستن. فیلم قرار بود فردا از چهارشنبه همین هفته اکران بشه، اما به دلیل اینکه این روزا نمیشه برای هیچ فیلمی که کرد فیلم فیلمای دولتی، اکران فیلم افتاده به شنبه هفته آینده تا وقت باشه برای تبلیغات. عجب. خب کامران دیشب سمت شما گویا در رابطه با موسیقی شلوغ خلوغ بود حسابیاره؟ اوه اوه اوه چه شلوغ بلوغی درسته. دیشب مراسم سالیانه موسیقی آمریکا تو سالن مایکروسافت مایکروسافت تئاتر لس آنجلس برگزار شد. مجری برنامه فرش جان سرکار خانم جنیفر لوپز محبوب های خسته مخصوصاً سامی بودند. <تصفيق> خلاصه کلی توی این برنامه جایزه پخش و پلا شد. بیشترین جایزه رسید به تیلر سیفت که توی 6 رشته نامزد بود تو 3 تا رشته بهترین آلبوم پاپ راک، بهترین هنرمند معاصر و بهترین ترانه سال جایزه گرفت. کدوم ترانه‌اش بهترین شد کامرا؟ بلانک اسپیس یا فضای خالی؟ بسیار خب ممنونم ازت کامران عزیز، باد خدافی می‌کنیم تا فردا و بخشی از همین بلانک اسپیس تویلر سوئیفت رو به اتفاق می‌شنویم. تا فردا خدا نگهدار. you where you been i could show you incredible things magic madness heaven sin saw you there and i thought oh my god look at that face you look like my next mistake So, با سلام بیسه کسی دوشنبه شب را ضمن کف کردن از این که آقای پوتین ماشین خودشم ورداشی با خودش آورده تهران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهاوی امروز و امشب آغاز میرم اعلام فراری شدن فرد دیگری با صد میلیارد تومان پول وزارت نفت و سوال کارشناسان که با این پولای وزارت نفت مایی کجا ریخته هر کی میرسه چند تا گونیشو برمیداره در میره؟ ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم هفتامین سالمرگ داریوش و پروامیه فروهر از مقتولین انقلاب زنجیره‌ای در تهران و نظر ناظران که با این وضع اینا اگه 17 تا جونم داشتن عزیزان 17 بار می‌کشتنشون و تشکیل فراکسیون ضد رکود توسط نمایندگان اصولگراوی مجلس شورای اسلامی و توصیه فعالان عرصه رکود به آلان که همین شماها های استفاقه بدیم به خدا رکود خودش خجالت زده میشه میذاره میره مهمترین نناوین خبری که سابت گذشته را شامل میشدند اینک مشروب خبرها با چچهی چه همکارم بلبل. بل. با سلام، با تاجب در پیش بودن یا مربعین معاون وزیر خارجه تأکید کرد که مردم مطلقاً تصور نکنند، مرزها مثل سال گذشته باز می شود و بدون ویزا می به کربلا بروند و با اشاره به قوانین سخت عراق در برخورد با اطباق خارجی که بدون مدرک معتبر بین المللی به این کشور سفر می کنند، گفت طبق قانون عراق ورود به این کشور بدون ویزا تا 6 ماه زندانی دارد در همین راستا یکی از کارشناسان امور کربلایی کشور از مردم خواست حرفهای معاون وزیر خارجه را جدی نگرفته در صورت تمایل به سفر بدون ویزا به و لا با و شماره تلفن جانم آقای میکروپون سلاین رپرتاژآیکی یا خبر ییش یاخره. بخالد نباشه بلبل دیگه الان نون تو کربلا است. بخون خبرو. فهمم رسش. وسط خبر شماره تلفن میخونم واقعا. ای راست میگی. زایشت شما تلفن. بگو با تلفنی مرکز کسی تماس بگیرن من خودم کارشونو رامین دسم. آره با هر ذیبگوذر اصلاح میکنم. وی از مردم خواست هفت های موابنه وزیر خارجه را جدی نگرفته. در صورت تمایل به سفر بدون ویزا به با شماره تلفن مرکز خبری بیست و, و سی تماس بگیرند تا کربلای اکبر میکروفون حالا آنها را راهنمایی نماید پایان مرش اخبار بله همانطور که همکار خوشالهانم بول بول به اطلاعتان تان رساند با توجه به در پیش بودن ایام اربعین با تقاضای هموطنانمان برای سفر به کربلا تماسی داریم با برادر مشکلگشا کارشناس مشکلگشایی برنامه باز بله. برای بچهای وزارت تا مشکلات ما و شما را در این زمینه گشایی کنند بله بله. ای مشکل جان سلام علیکم داشته باشید با شاناندا تا بنده بحث رو شروع کنم بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما باش شاناندا گونا عزیز بنده در خدمت ای بله همونطور که توی خبرها آمده بود تا به حال هزار نفر در سامانه تمساح برای سفر به کربلا در ایام اربعین ثبت نام کردن؟ نه، ببخشید، سامانه سماح هست البته سمسوق نمی‌ه. آ، من تیم ساقینند. سماح چی هست آلا؟ مشکل این کلمه مخفف ساماندهی مشتاقان ایام حضرت. قبول بشه. حالا مشکل جنبه بفرمایید که شما به عنوان دستگاه امنیتی کشور مم. امنیت این زایران رو چجوری حفظ می‌کنید؟ عرض کنم که ما سعی می‌کنیم که با خوبی امنیت از این زون زوار رو حفظ خب. حالا من دغلی براد در جزئه آتش نمیشم ولی همونطور که همه عزیزان میدانن ما حواسمون به همه چیز هست اون پلیس بله. فتا بود حواسش به همه چی بود مشکل الان بله. شما هم به خودتون گرفتید این چیزا رو دیگه, نه دیگه. ما در بالاترین رده امنیتی هستیم و در حقیقت میشه گفت ما خودمان هم حواسمون به پلیس فتا هم هست آه، آفرین قابل میشه خب الان به من بگو که با توجه به این بله. حیوله های دایشی که تو آراغ پرند. چجوری میخوایین امنیت اون همه ظاهر ایرانی رو تأمین کنید؟ ببینید خب ما بالاخره با برادران امنیتی عراقی خودمان خب. جلسات رو برگزار کردیم که آنها به ما قول دادن امنیت این عزیزان رو تأمین کنن ان چون داد؟ آه خسته نباشه اینه برادران امنیتی عراقی ای خودشون بلد بودن امنیت برقرار کنن که خب الان نصف مملکتشون دست دعایش نبود که صد تا امنیت اینا رو تامین کنن نه نه من رو هم نیست میگم بالاخره این عزیزان هم دوران اینجا تلاش خودشان رو میکنن اتفاقا آه. الان خدا بنده در کشمیر شهید پرور عراقی هستم من با در حالا صد بودیم با عزیزان عراقی که شما تماس گرفتید با. جدی خب شما هم پشت عراقی بله بله بله میگم هیچ می... امیدی نیست که دعایش تو اونجا بگیریم راحت بشه بله. دستمش که بله. نمیشه الو علو. صدای شما رو بنده نشدیدم های چی و با. حال شویخی شو، کردم خب بله بله پس بالس. یعنی مسئولین امنیتی عراق قول بله. دادن که امنیت ظاهرین ایرانی رو تأمین کنن دیگه بله بله خیال همه عزیزون راحت باشه مسئله امنیت حل انشالله چی شد؟ موشکه؟ خوبی چی بودی؟ الله الو الله اکبر الله الو. مشکل الله الو چی میگه علی اکبر واسه چی میگی مشکل حرف بزن با من مش... بل. بل. الو آها. الله اکبر بر کنم ظاهرا تو جلسه ای که ما بودیم یکی از عزیزانت به صورت انتحاری خودشو مونوجر کرد اونجا تو جلسه‌ای که بل. برای امنیت ظاهرین برگزار کردیم؟ بل. بل. خسته خسرا باشید بابا اجازه چش... بدید منم اجازه بشم برام یک جای امن خدا نگهداره بابا بله بله یعنی چی بگم من شکلات هر چی بگم که کم گفتم دیگه ولی ما تشکر کند توجه شما تا شبی دیگر، برنامه دیگر، مشکلی دیگر و انفجار اتحاری دیگر خدا نگهدار از بس از خوبی های نامزادم شه دوستم تعریف کردم اونم با نفوذ به گوشیم و برداشتن شمارش بهم خیارت کار حسین هستم اصفهان شانس آوردی به خدا نامزدی که هر کی با شما تلفنش بتونه مخوشه بزنه به در زندگی نمیخوره دیگه برو از طرف ما این دوستاز ماج کنترل نجات داد چیزای آدم میشنفه شماره نامزده طرف از گوشیش برداشته بعد بر دیگه دخترم دیده طرف شما داره دیگه نه نگفته بهش دوره آخر زمون شده به خدا اما خانم آقاین دختر خانم آقای پسرا از اونجا که سیستم اقتصادی ایران یکی از بی نقص ترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های اقتصادی دنیاست مقامات جمهوری اسلامی حالا که تحریم‌های اقتصادی قرار برداشته بشه دائما نگرانم که دشمن به هر طریقی به داخل این ابر سیستم اقتصادی ما نفوذ کنه و از اسرارش مطلع بشه و بعدم از لج ش شویی چیزی لای چختندهاش بذاره و بره به همین دلیل جلوگیری از نفوذ اقتصادی غرب خصوص بعد از لغو ها تو دستور کار نیروهای مؤمن و انقلابی قرار گرفته یعنی اگه تا الان کشورهای غربی به خاطر تحریم‌ها امکان سرمایه گذاری تو ایران نداشتن بعد از لغو تحریم‌ها با این بساطی ای که را افتاده دیگه سرمایه گذاری نخواهند داشت آقا اصلا خودتون همین الان بزنید جای کسی که 500 میلیون دلار پول داره می‌خواد بیاد ایران کارخونه را بندازه 500 میلیون دلار فکر خیلی ها. 500 من به شخص 500 میلیون دلار داشتم میرفتم شش. چه میدونم مثل کجاامم؟ هو لو میرفتم ویلی های ویلای تریپلکس می قدمیددم با استخر و جگوزی و اینا تا آخر عمرم هموز کهزار استق دراز میکشم برو انقدر برونزه می کردم اصلا تدیدیک شم همونجا بمیرم وال حالا از بحث اصلی دور نیفتیم اقا از دریچه چش سرمایه گذار اقتصادی به این 500 میلیون بی زبون نگاه کنین دیگه حال من که قرار نیست 500 میلیون پول داشته باشه. فرض کن شما سرمایه‌گذار هستی 500 میلیون دلار داری این پول رو بیاری ایران باج پنج تا کارخونه راه بندازی مثلا خب وقتی میدونی مثلا کافی شریعت مداری نامی توی ایران یه شب مثلا یه شبه یه دفعه شب خواب صبح مثلا پاشش خواب نما بشه صبحش کیهان تیتر بزنه که فلان شرکت خارجی نفوذی است فلان سهامدارش با صهیونیست ها یک بار مثلا چای خورده است بستنی فلان خورده از در عرض 24 خودتون و 500 میلیونتون رو همه بشین صفر مطلق خب من این مغز خر خوردی سرمایه‌ت رو ایران و نمی‌کنی دیگه سرمایه‌ت میبری هند میبری ویتنام میبری ماداگاسکار میبری گوام چه میدونا هر جایی که قدم سر رو روی چه چششون بیذارن آقا ولی از من میشنفی به خدا همون هونولولو برین ویلا تیری بلکسر رو بخرین خیلی فاظ میده مارم دعوت کنین دور رو هم حالی ببرین. بابا بابا قبل از هر چیز صدای زهران نعمتی رو به اتفاق بشنمیم این افتخار تنها متعلق به من زهرا نیست متعلق به ورزش کشور و به خصوص ورزش بانوان کشور من همیشه سعی کردم که بتونم نیمه پر لیوانو ببینم واقعا لطف خدا و دعای مردم شامل حال من بوده از همه افرادی که به حال به نوعی دچار معلولیت هستند میخوام که با خاطر آرزوهاشون تلاش کنن و هیچ وقت تسلیم معلولیت نشنند بله غریب سلام میکنم سلام. سلام سلام. این خانم زهران نعمتی واقعا یه کار بزرگی کرد تو ورزش زنان ایران درسته؟ درسته فرسی جان یه شاهکار بودی کسب همزمان سحنیه اولمپیک و سحنیه المپیک در تیر و کمان توسط یک خانم ورزشکار که دوچار معلولیت هست یعنی با یه تیر دوتا نشون رو زن. تو مسابقات بله. آسیایی تایلند که همه رو زده کرد برای ما ورزشیا واقعا یه حس و حال خوبی بود. آره واقعا ما هم یه حال خوبی داریم با این موفقیت ورزشی زنان. فرشی تا تو ورزش خانم حسینی خبرم بدم که تیم فوتسال زنان بالاخره رسید به گواتمالا بعد از یک روز اوجراق در مکزیک سرانجام آره ویزای گواتمالا گرفت و راهی این کشور شد. فارت نوشته سفیر ایران در مکزیک خزینه سفر تیم زنان رو به گواتمالا تقبل کرد بعد هشت صبح فرداام بله به وقت ایران اولین بازیشون رو با تیم پرتغال انجام میده هشت صبح فردا به وقت ایران به به ان شاء بزنن له کنن تا دل اونایی که دوست نداشتن این تیم بره بالا بیشتر دوچار دل پیچه بشه هرچند باز نتیجه مهم نیست مهم بازی جوان مردانه که نه جوان زنانه است دیگه چه خبر از ورزش آره آره علی چفاشیان هم امروز یه صحبت جالبی کرده گفته کالوس کیروش ناظر بازی های تیم ملی امید ایران در انتخابی اولمپی خواهد بود وقتی این خبر محمد مایلی کوهن شنیده که مسئول تیم امیده دوباره یه مصاحبه جنجالی کرده به کیروش تاخته و گفته پول خرده این مربی کردن به باد دادن سرمایه های ملی و حق بچه های جنگ و جانبازانه منظورش خودشو دیگه این حاجی مائلیکو هم فکر نکنم توی کیروشو بیرون نکنه خودش نرجاش بشینه این ساکت نمیشه همینطوری از این حرف میزنه دیگه عادت مم. کردیم البته به سر و صداش ممنونم از دت فریبورز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگه داره همیگی با توجه به تحرکات انتخاباتی اخیر فتنگران در شهرهای ورامین و ایلام قرارگاه انتخاباتی دافع الحضور وابسته به سپاه پاستاران برگزار می نماید منور انتخاباتی فرض انتخابات جهت آمادسازی نیروهای غیر فرضی سپاه و بسیج برای شرکت موثر در انتخابات فرزی مجلس و خبرگان در این منور این موارد توسط نیروها تمرین می گردند به ریختن فرزی تجمعات فتنگران فرزی با پنج بوکس و نانچیکا و اشکاور غیر فرزی بازداشته فرزی تعداد زیادی از افراد در انتخابات فرزی دعت کردن فرزی شبکه موبایل و اسمس در روز انتخابات فرزی رمی سلامیت کردن فرزی فتنگرانی که در انتخابات فرزی کامدید شدند و حضور فرزی به غیر فرزی سفا و بسیج در پاوی سندوخاب فرزی برای نظارت بر شما برش فرزی آرابق غیر شهروندان و تعداد زیادی دیگر از عملیات های فرزی برای آماده کردن نیروها در برابر خطرات غیر فرزی مانور انتخاباتی فرز انتخابات والا پدرمون که درآورده این آخه چه چه پوشک ها هست سایز درستم که می‌خریم شب تا صبح نفوس پیدا میکنه شلوار خیس میشه پسر کوچولوی من آسی شده دیگه خلاصه این نفوس پدرشو درآورده ان شاء که حل بشه ان که راهش پیدا بشه به ما بگن مرسی خدا رس. امیدوارم این تولید کنندگان محترم پوشاک پیغام این هموطن رنجیده و دردمند ما رو شنیده باشن واقعا چه وضعشه آخه خانم حال شما فعلا به نینیتون کمتر مایات بدین تا دوستان تکنولوژی تولید پوشاک و ارتقاء بدن دیگه بلکه جلوی نفوز هم گرفته بشید. اما حالا ما کاری نداریم ولی خداوکیلی شما نگاه کنین مثلا جمهوری کمونیستی خلق چین که نه خدا پیغمبر قبول دارن نه دین و ایمان درست حسابی دارن جوری به اقتصاد نظام مقدس ما نفوذ کردن که هیچ باید نیست اقتصاد جمهوری اسلامی همین روزا به سلامتی بزات و صاحب اولاد چشم بادومی هم بشه دیگه اسمش هم اینه سرمایه گذاری خارجی ایران بهشت به گذاران خارجی و خیلی هم خوب البته ظاهرا از نظر آقایون خارجی یعنی فقط چین بقیه کشورها خارج مضوب نمیشن حالا کاش باز این چینی ها درست کار انجام میدادن آقا الان چند سال این آزادراه تهران شمال و کنتراتی دادن دست پیمان کار چینی بابا میگن رضا کل جاده چالوسو با بیل و کلنگ و عملو کارگر اینا چهار سال ساخت کرد یا اینکه مثلا الان برید تو بازار دست روی هر چی بذاری چینیه دیگه تولید های خودمون پشت سر همه برشی کس میشن و چیکارشون برگج میخوره و میافتن زندان و چرا چون جنس چینی با نصف قیمت تمام شده تولید کننده ایرانی داره وارد میشه خب این اسمش دیگه حتی نفوذ اقتصادی هم نیست به قول آقامون شبیخون اقتصادیه یا حتی بدتر از اون تجاوز گروهی اقتصادیه اون وقت این اشکال نداره ولی اگه مثلا یه وقت اپل و که های آمریکایی پاشون به ایران بادشه، اون واویلاست نمیدونم اقتصاد ایران دیگه اونجوری بیسیرت میشه مثلا. چی بگیم والا؟ فقط باید یک سری به تأصف تکون داد که اونم چون برنامه راژیویه دیگه هر چی تکون بدیم سرمونو شما نمیبینین دیگه ما داریم الان تکون بدیم الان من دارم سرمون تکون ولی شما نمیبینیم به تعصف. درسته امشبمون هم به پایان رسید شاملو میگه پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت درناها و به هنگامی که مرغان مهاجر در دریاچه ماه تا پارو میکشند خوشا رها کردن و رفتن خوابی دیگر به مردابی دیگر خوشا منداوی دیگر به ساحلی دیگر به دریای دیگر خوشا پرکشیدند خوشا رهایی خوشا اگر نه مردن به رهایی آه این پرنده در این قفس تنگ نمی شب طولانی پاییزیتون پر از پرواز خیال تا فردا تو به شاید بروازم غفسینا چشید نفست ط نهذ را به ت تا سنجیر رو Shabbat <laughs>